تام استوپارد مقدمه مترجمان پول در اصل یک توافق اجتماعی در طول تاریخ جوامع بشری روشهای مختلفی رو برای رسیدن به این توافق امتحان کردند از صدفهای دریایی تخت سنگهای مرمرین نمک تلا تا سیستم پیچیده بانک مرکزی که امروز توی جهان رایجه بعضی از این پولا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 در طول مرز پروس ونزوئلا شهروندان از ابرتورم 400000 درصدی به کشورهای همسایه یعنی برزیل و کلمبیا فرار میکنن. بیشتر از 3 میلیون نفر تا حالا از فقر و گرسنگی از ونزوئلا فرار کردند لورنا یه نام وای 48 ساله است که بالاخره تصمیمش رو برای مهاجرت به کلمبیا گرفته توی مرز اما ماموران مرزی وسایل اونو تفتیش تفتيش تا اگه چیز ارزشمندی داره از اون بگیرن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 شرایط تقریبا پایداری رو تجربه میکنه اما قیمت اجناس توی بازار دوباره سر به فلک کشیده هیچکس حتی مقامای عالی روسپی دولتی هم به توانایی دولت برای جلوگیری از وقوع یه بحران اقتصادی اعتماد ندارد. سال 2019 در شانگهای یک کارشناس جوان به اسم عنی به دوستش در پیامرسان ویچت که هر روز توسط میلیاردها چینی مورد استفاده قرار میگیره پیامیداد. داد. دوستش بهش گفت که به خاطر مصرف مواد به دررسر افتاده و ناگهان ارتباط اینترنتی اونا قطع شد. فردای اون روز دو مامور لباس شخصی پلیس به دفتر کار عنی رفتن و ازش خواستن با اونا بره. هفته ها خبری از اون نبود. وقتی برگشت و به فضای مجازی دسترسی پیدا کرد متوجه شد،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 برای همین مجبور بود از خلاقیتش استفاده کنه و پولش رو توی موهاش جاسازی کنه عنی چینی که دسترسیش به ابزار پرداخت آنلاین محدود شده گویی به زندان مالی افتاده خریدهای الکس امریکایی هم زیر نظره و هر بار که از کارت اعتباریش برای پرداخت استفاده میکنه، اطلاعات اون خرید به شرکتهای تبلیغاتی فروخته میشه. این موارد مختص به چند کشور به خصوص نیست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 آشکارا حس میکنند زیر نظر قرار دارند از یک طرف برادر بزرگ نماد و چهره همون حکومتی که به اشکال گوناگون بر زندگی طبقات مختلف مردم نظارت و کنترل داره و از طرف دیگه شرکت های بزرگ ما رو زیر نظر دارن و تک تک خرید های ما رو ردگیری میکنن و اطلاعات خصوصی ما رو بدون اجازه به شرکت های تبلیغاتی و واسطه ها میفروشن حریم خصوصی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 باید از ارزشمند بودن پولی که قرار را از خریدار بگیره اطمینان داشته باشه. در طول تاریخ جوامع بشری برای رسیدن به این توافق اجتماعی راه های زیادی رو امتحان کردند. از های دریایی، نمک، طلا تا سیستم پیچیده بانک مرکزی امروز. بعضی از پولا پشتوانه نسبت به بقیه دارن و در طول زمان ارزششون رو بهتر حفظ میکنن.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 تفکیک قوا و حاکمیت قانون رو به طور کامل اجرا میکنند میتونن به طور موثر از تورم، مصادره اموال و فساد مالی که مصداق سوء استفاده از کنترل دولت بر اقتصاده جلوگیری کنن. در دنیای امروز کارکرد پول چگونه است؟ اسم پولهای ملی رایج در دنیا فیاته که از کلمه لاتین فیات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 ممکن است اثرات تورم بالا برای فردی که توی ایالات متحده یا بریتانیا زندگی میکنه مشهود نباشه اما متاسفانه برای میلیاردها نفر که تو کشورهای با اقتصاد ضعیف زندگی میکنن به شکل کاملا واضح و دردناکی قابل لمسه همچنین پولهای ملی به خاطر ویژگی چاپذیر بودنشون یکی از عوامل به وجود اومدن جنگهای طولانی در زمان ما هستند دولت ها می با چاپ کردن پول برای ادامه جنگ حزینه اون رو با استفاده از تورم به نسل های بد منتقل کنند. این یعنی جنگ های طولانی تر و خرج تر. جنگ جهانی اول یه نمونه غمانگیزه که طرف های اصلی درگیر تونستند با استفاده از تورم حزینه ادامه جنگ رو تأمین کنند. هم آلمان هم روسیه اجرای قانون پول تلا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 یه اشکال دیگه سیستم پول دنیای امروز ما مشکلات جابجا کردن پول بین کشورهای مختلف دنیاست. است. کشورهای مثل چین، روسیه، آرژانتین و اندونزی محدودیت‌های سخت ایرانی برای تبدیل یا انتقال یا جابجایی پول برای شهروندانشون وضع کردن. این محدودیت‌ها بیشتر از طریق کنترل پولیه که هر یک از شهروندان این کشورها میتونن به پول یک کشور دیگه تبدیل کنند.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 دیجیتالی شدن پول در طول دو دهه گذشته تقریبا باعث از بین رفتن حریم خصوصی شده. همه تراکنش‌های مالی برای مقاصد سیاسی و تجاری مورد بحر برداری قرار می‌گیرند. پول الکترونیکی مدت زیادی که وجود داره اما ابزار پردازش داده‌های بزرگ برای پایش و نظارت مؤثر بر اونها به تازگی فراهم شده. تا وقتی دولت‌ها و شرکت‌های تبلیغاتی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 تبلیغ اون محصول یا مشابه اون رو توی تایملاین فیسبوک یا اینستاگرام خودتون مشاهده میکنید این ردپای دیجیتال میتونه بسته به کشوری که در اون زندگی میکنین طبعات خطرناکی داشته باشه در تابستان سال دوهزارنوزده دهها هزار دانشآموز هنگکنگی برای اعتراض به طرحی که استرداد شهروندان هنگکنگی به چین رو تسهیل میکرد تجمع کردند اونا میدونستن اگه از کارت بیلیت های متروشون که به اسم واقعی اونها صادر شده استفاده کنن حکومت می تونه از طریق اطلاعاتی که از طریق اون کارت هوشمند به دست میاره هر لحظه از موقعیت مکانی اونها مطلع بشه. برای همین اونها از پول نقد برای خریدن بیلیت مترو استفاده کردند. در حال حاضر میشه در دنیا از پول نقد استفاده کرد ولی با از بین رفتن اسکناس و سکه در دهه آینده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 در واقع مردم عادی هستند. چی می شد اگه یه سیستم جدید پدید می اومد که در اون دولت ها نمی پول رو از طریق ایجاد تورم بیارزش کنن یا شرکت های گمنام جهانی نمی جلوی نقل و انتقال پول رو بگیرن چی می شد اگه پول به طور کامل دیجیتالی می شد و هر کسی به اینترنت دسترسی داشت صرف نظر از اینکه در کجای جهان زندگی میکنه،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 که کنجکاوی خاننده رو برمیانگیخت که نویسنده از نام مستعار استفاده کرده بود هویت ساتوشی تا به امروز رازیه که همچنان برای همگان جذابه دوم که این مقاله چیزی رو مطرح میکنه که قبلا هرگز وجود نداشته پول دیجیتالی مستقل از حکومتهای مرکزی کمتر کسی فکر میکرد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 تامین امنیت و نقل و انتقال اون رو خیلی دشوار میکنه. بسیاری از طرفدانان بیت کوین این ارز دیجیتال ممکن روزی برای حفظ ارزش و پسنداز بلند مدت جایگزین طلا بشه. همونطوری که در ادامه این فصل توضیح میدیم کمیابی بیت کوین از نوع غیر و کمیابتر از تلاست. اما با این وجود نقل و انتقال و ذخیره امن اون،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 خورد فروشی های مثل علی بابا، آمازون و اپل یا حتی اپلیکیشن های پرداخت ساز مثل ویچت، پیپل و سکویر اونها رو پردازش میکنند. این شرکت‌ها روی نقل و انتقال پول اختیار تام دارن و قادرن تراکنش های مالی رو سانسور کنن. اونا میتونند برخلاف میل کاربران پول‌هاشون رو مصادره و حساب‌هاشون رو مسدود کنند. علاوه بر این به دلیل متمرکز بودنشون،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 در حوزه دیجیتال وجود داشته باشه ساتوشی ناکاموتو در 31 اکتبر سال 2008 بیت کوین رو به عنوان یک ارز دیجیتال معرفی کرد. کمیاب بودن بیت ریشه در ریاضیات داره. اعداد اول از نادرترین اعداد در علوم ریاضی هستند. یک عدد اول مثل دو، سه یا پنج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 از کامپیوترهای خیلی قدرتمند برای پیدا کردن اعداد کمیاب خاص استفاده می میکنند به هر کدوم از این اعداد کمیاب پیدا شده اثبات کار میگن چون به همه ثابت میکنه یابنده این عدد برای پیدا کردنش تلاش و هزینه کرده همانند تلا برای استخراج بیتکوین نیازی به کسب مجوز از هیچ نهاد یا مقام مسئولی نیست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 و باعث سهولت نقل و انتقال پوله یک تراکنش در شبکه بیت کوین چیزی شبیه به چک در سیستم سنتی بانکیه بیت کوین با دفتر کل مخصوص خودش به نام بلاک کار میکنه هزاران نفر در سرتاسر سر دنیا نرم افزار بیت کوین رو اجرا میکنن و از طریق اون میتونن همواره درستی بلاک رو بدون نیاز به یک مرجع مرکزی تعیید کنن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 تراکنش صاحبان بیت کوین هم شبیه به نوشتن یک برگه چک کار میکنه اونها رقم رو بر روی چک می نویسند و اون رو امضا میکنند. اما امضا روی یک برگه به راحتی قابل جعل شدنه امضای تراکنش های بیت یک امضای دیجیتالی بر پایه علم رمزنگاریه این امضای دیجیتال توسط رمزی ساخته میشه که فقط در اختیار صاحب بیتکوینه. به این رمز کلید خصوصی میگیم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 میتونه بیت بیتکوین به عنوان پاداش برای خودش در نظر بگیره و اون بلاک و همه تراکنش هایی که در اون هستن جزئی از تاریخچه ابدی و تغییر بیت بیتکوین میشن در زمان نگارش این کتاب یک تراکنش عادی بیتکوین معمولا در کمتر از یک ساعت بر روی بلاکچین ثبت میشه چون بلاکچین بیتکوین مجموعی از بلاک ها یا به عبارت دیگه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 درستی هر بلاک ارائه شده از طرف ماینرها رو به طور مستقل تعیید میکنه. برای راهنداختن یک فول نود در شبکه بیتکوین نیازی به فراهم کردن سخت افزار قوی نیست و بیشتر لپتاپ های امروزی میتونن نرمافزار نرم افزار بیتکوین رو اجرا کنن. تا وقتی راهندازی و اجرای فول نود ارزان و امکان پذیر باشه، شبکه بیتکوین غیر متمرکز باقی خواهد موند.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 تونه پاداش ساختن این بلاک جدید رو دریافت کنه در زمان نگارش این کتاب پاداش هر بلاک معتبر جدید دودهیم بیت کوینه و هر چهار سال این مقدار نصف میشه یعنی این مقدار در سال 2020 به 625 و صدم و در سال 2024 به 3 ممیز ۱25 هزارم کاهش پیدا میکنه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 افراد زیادی تلاش کردند تا موفقیت نوآوری ساتوشی رو تکرار کنند. یک روش متداول به کار بردن بلاکچین بیتکوین کوین برای استفاده های دیگه است. از سال 2014 شرکت‌های معروفی تلاش کردند مدل بلاکچین بیتکوین کوین رو در صنایع مختلف به کار بگیرن و تا حالا ها دلار برای اون هزینه کردند. این موضوع توجه رسانه‌ها و مردم را بیش از حد به تکنولوژی بلاکچین جلب کرده.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 اوایل سال 2020، سازمان های تنظیم مقررات آمریکا و اروپا انتقادات زیادی بر این پروژه داشتند و این پروژه رو تحت فشار قرار دادن و آینده اون همچنان در حاله ای از ابهامه. گروههای دیگری هم بودن که تلاش کردن موفقیت ساتوشی رو به روشی بیشرمانه کپی کنن و ارزهای دیجیتالی ساختن که نام بیت کوین در اونها وجود داره. این موضوع باعث سردرگمی افراد مخصوصاً واردها میشه.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 خلاصه بیت کوین پیشرفت بزرگی در علوم مهندسی و میتونه جایگزینی برای سیستم مالی رایج در جهان باشه بیت کوین یه پول دیجیتالیه که نقل و انتقال جهانی اون آسون و تصویه اون به جای چند روز در چند دقیقه امکان پذیره بیت کوین یه دارایی کمیابه پس در برابر تورم مسئولیت داره بیت کوین غیر متمرکزه هیچ کس نمیتونه پرداختهای شبکه بیتکوین رو سانسور کنه. بیتکوین تنها پول الکترونیکی، غیرمتمرکز و کمیاب جهانه. بیتکوین، پتانسیل تغییر نظام مالی رایج در دنیا رو داره. /سه قیمت بیت و نوسان اون. لطفا توجه کنید. نویسندگان، مترجمان و منتشر کنندگان این کتاب هیچ تخصصی توی زمینه سرمایه گذاری ندارن. این بخش از کتاب سعی میکنه دلایل محتمل تغییرات قیمت بیتکوین و نوسانات اون رو شرح بده ولی به هیچ وجه مرجع مناسبی برای مشاوره سرمایه گذاری نیست هم میخوان بدونن چرا بیت کوین ارزشمنده؟ چرا این روزها قیمت اون انقدر بالا رفته؟ چرا قیمتش انقدر نوسان داره؟ اصلا اگه بیت کوین بر خلاف دلار آمریکا از پشتوانه اقتصادی یا سیستم غذایی برخوردار نیست اصلا چرا باید قیمت داشته باشه؟ قیمت یک دارایی وقتی تغییر میکنه که توازن بین خریداران و فروشندگان اون به هم بخوره. در مورد بیت کوین به هم خوردن توازن به چند عامل بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت بستگی داره. از منظر بلند مدت، در طول ده سال گذشته قیمت بیت کوین از کمتر از یک دلار به نزدیک بیست هزار دلار رسیده و در ماه آگست سال 2019 حدود یازده هزار دلاره. بیت کوین کمیابه. همونطور که توی فصل دو گفتیم، عرضه اون به 21 میلیون واحد محدوده. عرضه محدود بیت کوین و برنامه شفاف تولید اون برخلاف پول کاغذی که بدون پشتوانه چاپ میشه و قدرت خرید اون با افزایش تورم هر سال کاهش میابه برای خریداران جذابه. به احتمال زیاد افراد بیشتری در بلندمدت جذب بیت کوین خواهند شد. چون دولت ها نمیتونن هر چقدر بخوان از اون تولید یا تراکنش های اون رو سانسور کنند، همچنین مسادره کردن اون تقریباً غیر ممکنه ارزش بازار همه بیتکوین هایی که تا کنون خلق شده فقط 200 میلیارد دلاره. این رقم بسیار کمتر از همه تلاهای استخراج شده به ارزش 9 تریلیون دلاره. در زمان نگارش این کتاب ارزش کل بازار بیتکوین حدود دو درصد از ارزش بازار تلاست. بنابراین به نوسانات قیمتی حساستره. حجم روزانه معامله شده در بازار بیت کوین به زحمت به ده میلیارد دلار میرسه. این رقم در مقایسه با 300 میلیارد دلار حجم روزانه بازار تلا رقم پایینیه. یعنی خریداران و فروشندگان کوچک میتونن بر قیمت بیت کوین تاثیر زیادی بذارن چون نقد نقدشوندگی اون پایینه. هرچه کوین بیشتر رواج پیدا کنه و مردم بیشتری از اون به عنوان دارایی استفاده کنن، نوسانات قیمتش کاهش پیدا میکنه. البته این ممکنه چند دهه طول بکشه. از منظر میان مدت اصلی ترین محرک قیمت کوین در مقیاس میان مدت هزینه های استخراج، تقاضای خرید مؤسسات بزرگ و نصف شدن پاداش بلاک برای ماینر هاست. استخراج بیتکوین هزینه داره. ابزار ماینینگ، هزینه اجرایی و برق. این هزینه ها رو باید با پول فیات پرداخت کرد. بنابراین اغلب ماینرها ها مرتب برای پرداخت هزینه های عملیاتی خودشون همه یا بخشی از بیتکوین هایی که استخراج کردن رو می‌فروشن. این رقم در زمان نگارش این کتاب ماهانه حدود 200 تا 300 میلیون دلاره. تقاضای خرید بیتکوین در این مقیاس از سوی موسسات سرمایهگذاری افراد ثروتمند کسب و کارهای خانوادگی و صندوقهای تأمین مالیه که میخوان وارد بازار ارزهای دیجیتال شن و معمولا با بیتکوین شروع میکنن. یکی دیگه از عوامل مهمی که در میان مدت بر قیمت بیتکوین اثر میذاره نصف شدن پاداش استخراج هر بلاک در شبکه بیتکوینه همونطور که توی فصل دوم گفته شد پاداش استخراج ماینرها هر چهار سال نصف میشه. در زمان نوشته شدن این کتاب، بیتکوین دو بار این رویداد که هوینگ نام داره رو پشت سر گذاشته. اولی در سال 2012 و دیگری 2016. هر دوی اونها یک شک در ارزه به وجود آوردن و باعث نوسان در قیمت شدن. افزایش قیمت بیتکوین باعث میشه معامله گرای بیشتری به اون جذب بشن. از گذاران خورد که صد دلار کوین میخرند تا موسسات سرمایهگذاری که میلیونها دلار در اون سرمایهگذاری کردند وقتی توجه رسانهها به بیتکوین جلب میشه و مردم احساس میکنن از قافله عقب موندن تقاضا بالاتر میره و قیمت افزایش پیدا میکنه در گذشته این کنش و واکنشها باعث به وجود اومدن حباب های قیمتی خیلی بزرگی شده تا جایی که قیمت کوین بعد از ترکیدن اونها تا 80 درصد پایین اومده. به احتمال زیاد این چرخه های صعود و افول حوالی هاوینگ های بعدی هم اتفاق خواهد افتاد. از منظر کوتاه مدت. غیر متمرکز بودن بیت کوین اثر جانبی مهمی داره. نوسان قیمت. هر جا بیت کوین معامله نوسان قیمت پدید میاد. مثلا توی سرافی های فیات به رمز ارز که به طور مستقیم پول فیات شما به بیت تبدیل میشه یا سرافی های بدون واسطه که در اونها افراد با همدیگه قرار ملاقات حضوری میذارن و با همدیگه دیگه معامله میکنن یا سرافی های رمز ارز به رمز ارز که کاربرا فقط اجازه دارن ارزهای دیجیتال رو به هم تبدیل کنن معاملهگران این ارزهای دیجیتال به دنبال سود بردن از نوسانات بازار هستند و برای همین صرافیهایی هستند که به اونها قدرت خرید تا صد برابر داراییشون رو میدن. صرافی‌های ارزهای دیجیتال غالباً توی اینترنت و به صورت آنلاین فعالیت می‌کنن. بنابراین اونها در هر ساعت از شبانه روز فعال و آماده به خدمت به سرمایه‌گذاران خرد هستند. در حالی که بازارهای سنتی عموماً توی مراکز اقتصادی دنیا مثل لندن، نیویورک یا هنگ کنگ مستقرن. و فقط پنج روز در هفته و هشت ساعت در روز، عمداً هم برای خدمات رسانی به کارگزاری های بزرگ فعالند برای نقل و انتقال بیت کوین فقط به اینترنت و یک دستگاه کامپیوتر نیازه. و همین خاطر ساختن یک آنلاین تقریباً کار ساده ایه. بیت کوین اوراق بهادار نیست، پس مقررات سختگیرانه بازارهای سنتی بر سرآفی‌های بیت کوین اعمال نمیشه. علاوه بر این صرافی‌های رمز ارز به رمز ارز نیازی به حساب بانکی برای پول فیات ندارند و کارمندان اونا میتونن از راه دور کار کنند. پس میتونن دفاتر اصلی خودشونو توی کشورایی مثل مالتا یا جمهوری سیشل یا فیلیپین مستقر کنند که قوانین و مقررات سهل‌گیرانه‌ای برای رمز ارز ها دارن. وقتی به حساب یک صرافی بیت کوین واریز میکنین یعنی به اون اعتماد میکنین که از دارایی شما بهترین شکل نگهداری کنه اما متاسفانه خیلی از صرافی ها خوب اداره نمیشن در طول سالهای گذشته مواردی از تخلف و ناکارآمدی منجر به سرقت بزرگی توی صرافی های امتی گاکس و بیتفینکس و کوادریگا و از دست رفتن دها ده هزار بیت به ارزش میلیاردها دلار شده هشدار تعداد زیادی از صرافی ها هک شدن بیت کوین های مشتریشون رو از دست دادن. در انتخاب صرافی خیلی دقت کنید و هیچ وقت همه داراییتون رو اونجا نگهداری نکنید سهولت خرید و فروش بیت کوین برای معامله گرای خرد باعث به وجود اومدن نوسان قیمت توی کوتاه مدت میشه اونا برخلاف بانک های مرکزی به این نوسان های قیمت علاقمندند چون از اون سود میبرند نوسان قیمت بیت کوین در بازه های زمانی یک ماهه و یک دقیقه میتونه خیلی شدید باشه. اول ژانویه سال 2019 قیمت بیت کوین 3500 دلار بوده و در ماه آگست 2019 حدود 11000 دلاره. نوسان قیمت روزانه بیت کوین تا 20 درصد کاملا طبیعیه. این موضوع برای سرمایه‌گذاران وحشتناک، ولی برای دلال هایی که از تغییرات قیمت سود می‌برند پربرکته. برخلاف بازارهای سنتی قیمت بیت کوین توسط قواعد بنیادی کسب و کار تعیین نمیشه. بیت کوین شاخص عملکرد محصول، جریان نقدی و کارمندی نداره که نداشتن این شاخصها باعث تأکید بر تحلیل‌های تکنیکال میشه که قابلان بازی سرجم صفر. بازی سرجم صفر به معامله گفته میشه که در اون فقط یک طرف سود میبره و طرف مقابل حتما متضرر خواهد شد. معامله ارزهای دیجیتال برای معامله‌گرا نوعی پوکر آنلاینه که توی اتاق نشیمن منزلشون بازی می‌کنن. قیمت بیتکوین مثل بازارهای سنتی به اخبار و رویدادهای جهانی واکنش نشون میده، اما لزوما با اخبار خوب بالا نمیره یا با خبرهای بد پایین نمیاد. مثلا وقتی هکرها به صرافی امتی گاکس که بزرگترین صرافی زمان خودش بود حمله کردن، قیمت بیتکوین کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت. اما وقتی توی سال 2018 صرافی بایننس که امروز بزرگترین صرافی دنیاست تک شد، قیمت بیت کوین افزایش پیدا کرد. وقتی ارزش بیت کوین بالا بره من نقد اونم بیشتر بشه، احتمالا نوسان قیمتش از بین میره. این موضوع شبیه به نوسانات قیمت سهام شرکت معروف در مقایسه با شرکت کمتر شناخته شده است. مثلا برای یک معامله گر سهام، بالا یا پایین بردن قیمت سهام شرکت اپل خیلی سختتر از تغییر دادن قیمت سهام یه شرکت کوچیک با سهام خیلی ارزونه. جذاب بودن بیت کوین برای معامله‌گرا، ریسک بالای معاملات، پایین بودن نقدشوندگی و ابزارهای معامله با قدرت خرید بالا که در اختیار گران قرار داره، همه و همه باعث به وجود اومدن نوسانات شدید توی قیمت اون میشه. خلاصه قیمت بیتکوین از روز اول به دلیل کاربرد ارزای محدود و افزایش تقاضای خرید در حال افزایش بوده. قیمت اون توی کوتاه مدت تحت تاثیر دلال نوسانات شدید خواهد داشت. در مجموع عامل ارزشمند بودن و نوسان قیمت بیت کوین محدود و ذات غیر متمرکز اونه اگر روزی بیت کوین فراتر از وسیله صرفاً برای حفظ ارزش دارایی افراد مورد استفاده قرار گرفته و بتونه نماینده اقتصاد دیجیتالی جهان بشه، همونطور که امروزه پول فیات نماینده اقتصاد غیر دیجییتالیه، میشه از اون به عنوان ابزاری برای پرداخت و میاری برای ارزشگذاری اجناس استفاده کرد. در این صورت، قیمت اون توسط کاربردش در انتقال ارزش بین افراد تعیین میشه، نه معاملات دلالان توی بازار. اما تا اون زمان قیمت اون تحت تأثیر نیروهای بازار که در بخش از منظر کوتاه مدت و میان مدت همین فصل شهر داده شد، قرار خواهد گرفت و 20 خواهد موند.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 جبران ضرر مالی بانک ها از طریق کمک مالی به اونها، مداخله نظامی توی کشورهای دیگه جهان، تقویت امنیت مرزها و یارانهای رفاهی برخی از کارهای سوال برانگیزی هستند که دولت ها از طریق چاپ پول بدون پشتوانه قادر به انجام اونها هستند.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 یا یک کامپیوتر یا یه فلش مموری نگهداری کرد یا اصلا اون رو به خاطر سپرد به راحتی میشه داشتن بیت کوین رو انکار کرد و مأمورای حکومتی هم برخلاف اسکناس نمیتونن به راحتی اون رو تصاحب کنن راه نجات از تورم های بالا مردم کشورهایی مثل ایران و سومالی تحت سلطه رژیمایی زندگی میکنن که بی‌پروا پول چاپ میکنن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 که باعث میشد پس انداز پول عملا غیرممکن باشه. پول از همون لحظه‌ای که به حساب افراد واریز میشه ارزشش کمتر و کمتر میشه. این باعث میشه مردم ونزوئلا تا پولی به دستشون میرسه، اون رو به کالاهای اساسی مورد نیازشون تبدیل کنن. مردم ونزوئلا تحت سلطه یک حکومت خودکامه زندگی میکنن که از طریق انتخابات آزاد و عادلانه انتخاب نشده و به مردم پاسخگو نیست.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 جابجا جا کردن پول از مبدع یا به مقصد یک کشور خارجی فوقلاده مشکله. عمده ترین راه ارسال پول از طریق واسطه هاست که به حسابهایی توی کشور مبدع و مقصد دسترسی دارند. یه واسطه که در ونزوئلا حساب بانکی داره از فردی در کولومبیا پزوست دریافت میکنه و معادل بولیوار اون رو در ونزوئلا به حساب اون فرد واریز میکنه.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 زمانبر و خطرناکه چون مرزهای زمینی و هوایی این کشور پر از ماموراییه که به دنبال توقیف پولهای نقد افراد هستند بیت کوین یه راه حل برای انتقال پول بین کشورهاست مردم ونزوئلا میتونن با استفاده از پیامک از دوستان یا اقوامشون تقاضای بیت کوین کنن و چند دقیقه بعد اون رو با کارمزد کمی دریافت کنند.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 دریافت کنندگان اون باید بتونن اون رو به پول رسمی کشورشون تبدیل کنن. بیتکوین در حال حاضر نمیتونه برای کارهای خیرخواهان مورد استفاده قرار بگیره مگه اینکه بشه از اون برای خرید کالا و خدمات استفاده کرد. بر یه تحلیل دقیق که توسط مت آلبورگ انجام شده تبدیل بیتکوین به پول ملی برای شهروندان اقتصادهای نوظهور از شرق آسیا گرفته تا قرب آفریقا در حال آسانتر شدنه فراتر از این وقتی بانک های سنتی تعطیل شند شبکه بیتکوین به کارش ادامه خواهد داد در حالی که زیرساخت جهانیش بهبود میابه نفت پذیرتر میشه و بیشتر مردم دنیا به اون دسترسی پیدا میکنند بنابراین توانایی بیتکوین برای کمک به نیازمندا به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. شبکه مش، یا شبکه توری که تمام گره های اون مستقیما به همدیگه وصل میشن، سیستم ماهوار و سیستم های برپایه فرکانس رادیو روی شبکه بیت کوین ایجاد شدن تا مردم بتونن حتی بدون نیاز به اینترنت قادر به دریافت یا ارسال بیتکوین کوین باشند. مهندس های نرم افزار روی پروژه های نوآورانه مشغولند که باعث میشه، ایجاد محدودیت برای دسترسی مردم به بیت از طرف دولتها از این هم دشوارترشه بیت کوین پولیه که تورم پذیر نیست و براحتی نمیشه مصادرش کرد جامعه ای بدون پول نقد بهانه حذف پول نقد از یک جامعه اغلب آسونتر شدن کارهای روزمره شهروندانه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 بلکه بر اساس عقاید سیاسی، شخصیت و دایره اجتماعیشون امتیاز می‌گیرن. دولت رفتار شهروندان وفادارش رو تشویق می‌کنه و کسانی که براش درس درست میکنند رو با جلوگیری کردن از مسافرت به خارج از کشور یا جلوگیری از دسترسی به اینترنت پرسرعت یا فرستادن هاشون به مدرسه‌های خوب یا گرفتن امتیاز مناسب برای وام بانکی مجازات می‌کنه. این سیستم‌های اعتبار اجتماعی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 خواه این نظارت توسط دولت ها و از طریق سرویس های باشه، خواه از طریق لیبرا که تحت کنترل شرکت های بزرگه. در هر صورت، این شرکت ها تمام فعالیت های اقتصادی افراد رو چه برای سود بردن، چه برای سرکوب و حتی مقاصد بدتر ردگیری کنند. چی میشه اگه آینده متفاوت باشه؟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 لایتنینگ شبکه پرداختیه که بر روی شبکه بیت کوین سوار شده. سیستم پرداخت رایج توی دنیا مشکلات گوناگونی در حوزه حریم خصوصی داره چون هر کدوم از واسطه‌های مالی بلقوه حفره‌های امنیتی این سیستم هستن. بیت از این نظر متفاوت عمل می‌کنه چون واسطه‌ای وجود نداره. پس در اصل میشه این نقطه ضعف رو حذف کرد.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 تراکنش های شبکه لایتنینگ در حال حاضر به هیچ وش کاملا خصوصی و ناشناس نیستند. اگرچه هدف توسعه دهندگان اینه که در آینده این قابلیت ها برای تراکنش های این شبکه فراهم شن. این پروژه خیلی شبیه به بیتکوینه چون برای استفاده از اون نیازی به کسب اجازه از جایی یا شخصی نیست و برای همگان صرف نظر از مکان، سن،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 اطلاعات جامعه کاربرانشون رو در سرتاسر سر جهان با دولتها به اشتراک می‌گذارن. اینکه مردم چه چیزی خریدن، به چه چیزی گوش میدن، چه می‌نویسن و کجا هستند. شرکتها پیرو حکومت‌ها شدن و حریم خصوصی وجود نداره. این رویه باعث میشه حکومت‌ها کنترل بی سابقه ای بر شهروندانشون داشته باشن. فاصله طبقاتی بین فقیر و غنی هر روز بیشتر میشه چون اثر کانتیلان هرچه بیشتر اثر میکنه و کسایی که با حکومت ارتباط نزدیک دارن میتونن به ثروتهای نامتناسبی نسبت به بقیه گروه های جامعه دست پیدا کنن. نظارت مستمر دیجیتال در حالی به یک هنجار تبدیل شده که دیگه امکان نقد حکومتهای خودکامه وجود نداره.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 ردگیری تلفن‌های همراه، های تراکنش تراکنش‌های بانکی و سابقه جستجوهای اینترنتی برای پیدا کردن و مجازات مخالفان استفاده می‌کنند. مخالفت با حکومت ناممکنه چون پول نقد منسوخ شده و همه خریدها از جمله خرید بلیت مترو و روزنامه و ماسک‌هایی که باعث پنهان شدن هویت افراد میشه به صورت دیجیتالی انجام میشه و زیر نظر دولت هاست. ها و شرکت‌های بزرگ چند ملیتی از همیشه قدرتمندترند. سال برداشت دوم. اقتصاد پویای جهانی در حال رشد و شکوفاییه. افراد زیادی در دنیا پول‌هاشون رو پسنداز انداز می‌کنن، ثروت می‌آندوزن، قدرت خرید مسکن دارن. و میتونن کسب و کار جدید راه بندازند کارآفرینان از کشورهایی که قبلا به اونها کشورهای جهان سوم میگفتند پیشروان نوآوری در اقتصاد جهانی هستند تغییر تابعیت از همیشه آسانتره چون همه قادرند به راحتی محل کار و زندگی و به طبع اون جایی که مالیات میدن را انتخاب کنند بنابراین دولتها برای کسب رضایت شهروندانشون با هم در رقابتند مالیات بر درآمد کاهش پیدا کرده ولی در عین حال کیفیت زیرساختها، خدمات و مدرسه ها به خاطر این رقابت جهانی افزایش پیدا خواهد کرد. بونگاهای اقتصادی کوچک کالاها و خدمات بیشماری فراهم می و باعث نوآوری هایی می شن که کسی فکرش رو هم نمی کرده. بسیاری از شرکت های چند ملیتی که بر بازار سلطه داشتن، حالا با تعداد زیادی از فعالان اقتصادی کوچکتری که در گوشه گوشه دنیا فعالیت میکنند جایگزین شدند. هر کس میتونه هر چیزی رو که میخواد بخره و پول اون رو بدون نیاز به کسب اجازه از اهدی و به صورت ناشناس پرداخت کنه. بیشتر حکومت های استبدادی ضعیف یا سرنگون شدند چون دیگه شهروندانشون یاد گرفتند که چطور قوانین مالی سخت ایران رو دور بزنن.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 یعنی پول فیات که به صورت الکترونیکی در اختیار شهروندان قرار میگیره مثلا موجودی حساب شما در نرم موبایل بانک این اجازه رو به دولت ها داد تا برای انجام ترهاشون پول چاپ کنن و اقتصاد رو به نحوی جدیدی کنترل کنن با پیشرفت عصر دیجیتال اقتصاد کشورا دیگه نمیتونست به مرزها محدود شه اوایل قرن 21 میلادی این مسئله خیلی واضح بود چون مشتریان محصولاتی رو میخریدند که در اون سوی دنیا تولید شده بود. شرکت‌ها از کشورهای فیلیپین و نیجریه نیروی دورکار یا فریلنسر برنامه‌نویس یا دستیار یا حتی رادیولوژیست استخدام می‌کردن. شرکای تجاری ممکن بود هزاران کیلومتر از همدیگه فاصله داشته باشند، ولی ارتباطات بین اونها دیجیتال، فوری و بی‌وقفه بود.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 در حال حاضر جوامعی که به این صورت خرید و فروش می کنند کوچک هستند مثل اونهایی که اوایل دهه 90 میلادی در اتاقهای چت AOL با هم گفتگو میکردند اما هرچه پرشمارتر بشن بیشتر میتونن کنترل اقتصاد رو از دست حکومت ها بگیرن هرچی ثروت بیشتری از مردم سرتا سر دنیا تبدیل به این پول مللی بشه که مردم مالک واقعی اون هستن جابجایی پول راحت تر و از بند سیستم‌های اقتصادی ملی رها میشه. دولت‌ها با هزینه واقعی جنگ روبرو میشن. وقتی همه از بیت استفاده کنن، اختیار دولت‌ها برای تأمین هزینه های جنگ صرفاً با چاپ پول خیلی محدودتر خواهد شد و تأمین مالی جنگ ها دیگه به آسونی یکصد سال گذشته نخواهد بود. اگر جنگی هم رخ بده،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 یا باید با خروج مقادیر زیادی از سرمایه های کشور رو بروشن یا به مردم آزادی بیشتری بدن. آثار آزادی بسیاری از ادبیات و فیلم به کمک شبکه های اطلاعاتی راهشون رو به خونه های مردمی که تحت سلطه حکومت های ستمگر مثل اریتره و کره شمالی هستند باز می کنن.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 در واکنش به تورم بیشتر مردم امروز بخشی از ثروتشون رو در ملک، سهام و فلزات گرانبها سرمایه گذاری میکنن. ولی بازار این داراییها متمرکز و دسترسی به اونها سختتر از بیت کوینه. وقتی مردم دنیا ثروتشون رو در بیت کوین ذخیره کنن، های این بازارها هم دیگه شایع نخواهد بود. مثلا، چون واحدهای مسکونی انبوه کمتری توسط خارجیان خریداری خواهد شد،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 کشور خود ما همیشه با این مشکل روبرو رو بوده افراد برای حفظ ارزش داراییشون ملک و آپارتمان میخرن این مسئله در دوره‌هایی که اقتصاد درگیر تورم بالاست به شدت خودش نشون میده در طول سال‌های 97 تا 99 شمسی قیمت مسکن توی تهران 300 درصد رشد داشته ظهور سرمایه‌گذاری غیر متمرکز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 بانک های آمریکا و اروپا و چین نفوذ ظالمانه خودشون رو از دست میدن چون هر فردی میتونه بانک خودش باشه و این موضوع به افراد اجازه میده داراییهاشون رو پسنداز کنن ثروت تو کشورهایی که نیروی کار صادر میکنن انباشته و کسب و کارهای داخلی اونها شکوفا میشه و در نتیجه خدمات و زیرساخت‌های اونها توسعه پیدا میکنه قدرت بانک های بزرگ کمتر میشه. بانک ها که امروزه به خاطر ارتباطات ویژه با حکومت ها و کنترلی که بر پول مردم دارن خیلی بزرگ شدن ورشکسته شکسته یا خیلی کوچیک میشن. مفهوم شکست ناپذیری بانک ها از بین میره و بانک ها و شرکت های بزرگ نمیتونند انتظار داشته باشند تحت هر شرایطی از کمک های مالی دولت ها برخوردار بشن. مثل اون چیزی که، به بحران مالی سال 2008 معروفه بانک و شرکت بزرگ وقتی این مزیت‌ها ها رو از دست بدن مجبور میشن به جای چاپلوسی و انتظار صدقه از دولت روی خدمات رسانی به مشتریاشون تمرکز کنند. شرکت‌ها و بانک های قادر خواهند بود به دلیل ذات بدون مرز بودن بیت کوین به مشتریان جهانی خدمات بدن و جای بانک های سنتی رو بگیرن سقوط برادر بزرگ و سرمایه نظارتی سرمایه داری نظارتی یعنی شرکت های بزرگ با داده های شخصی افراد مثل یک کالا رفتار می کنن. اونها این اطلاعات رو برای مقاصد تجاری و کسب سود و از راه تحت نظر گرفتن افراد در اینترنت به دست می آرن.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 بیت کوین پدیده یه که تأثیر بالقوز شبیه به اثر دموکراسی و اینترنت در جهانه. دموکراسی باعث از بین رفتن اقتدار و تمرکز در قدرت سیاسی شد و اینترنت کنترل دسترسی به دانش رو از دستان شرکت بزرگ گرفت.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 بلکه حتی برای کشورهایی مثل ایالات متحده و اروپا هم صادقه چون بیتکوین در بازه زمانی طولانی مدت عملکرد بهتری از پول ملی این کشورها داره در انتهای محله ذخیره ارزش، سندوهای بازنشستگی و مؤسسات مالی برجسته دنیا بیتکوین رو به سبد سرمایه گذاری اضافه می و بعد از اونه که دولتها اقدام به اضافه کردن بیتکوین به زخائر خودشون می کنن.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 حاوا پیما که ایمنی نداشت، مایکروویو که از قرار معلوم همه مواد مغذی غذا رو از بین می برد تلفن همراه که ظاهراً منجر به سرطان میشد یا اینترنت که عاقبتی جز شکست در انتظارش نبود. پاول کروگمن، ستون‌نویس مجله نیویورک تایمز در سال 1998 گفته بود تا سال 2005 به همه ثابت خواهد شد که تأثیر اینترنت روی اقتصاد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 بیتکوین یک تکنولوژی با روند نماییه که هنوز در سطوح پایینی از نمودار از شکل خودش قرار داره. بیت از نظر کاربرد، ظرفیت، آگاهی عمومی و جذابیت تجاری با چیزی که باید باشه فاصله بسیاری داره. تعداد شرکت هایی که محصولی بر پایه بیتکوین کوین می تعداد دانش آموزانی که بر روی اون تمرکز کردن، تعداد آموزگارانی که مطالعه اون رو به دانش آموزان تکلیف می کنن، تعداد فروشنده هایی که بیت کوین دریافت می کنن، تعداد نهادهای بشردوستانه که به توسعه بیت کوین کمک می کنن و تعداد رهبرانی که توانایی بیت کوین رو برای به دست آوردن حریم خصوصی مالی به خدمت بگیرن، کمن. در این حوزه نیازمند فعالیت و تفکر انتقادی بیشتری هستیم.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 بیت راهیه برای فرار از سیستم اقتصادی و سیاسی ناکارآمد. همکاری نکردن و خارج شدن از یک سیستم فاسد راه های جدید اعتراض هستند. برای اعمال تغییر لازم نیست یک نفر با هزاران فرد دیگری که مثل اون فکر میکنن هماهنگ کنه تا برای اعتراض در یک روز به خصوص به خیابونها بیان. این افراد، میتونند به راحتی ارسال ایمیل دارایی خودشون رو به هر کجا که بخوان منتقل کنن. ها می‌تونه نفر به نفر باشه. مقبولیت و پذیرش بیت کوین در ابتدا ای و بعد مثل جریان رودخانه و در نهایت به مانند سیل خواهد بود. آینده در دستان شماست. بیت کوین اختراع حوشمندانه که راه های جایگزین جدیدی برای مشکلات بیشمار سیستم های فعلی مالی و اقتصادی فراهم میکنه. نابرابری ها، شرکت های چند ملیتی انحصارطلب و حکومت های اقتدارگرا همه نتیجه کنترل دولت ها بر پوله. وقتی مردم دنیا بیت کوین رو بشناسن و یاد بگیرن که چطور میتونن برای رسیدن به استقلال از اون استفاده کنن، قدرت در سرتاسر سر دنیا به شکل قابل توجهی غیر متمرکز میشه. حکومت‌های اقتدارگرا مجبورن برای کرامت، ارزش‌ها و استعدادهای انسانی ارزش قائل شن. به جای چند شرکت بزرگ چند ملیتی، شرکت‌های کوچیک زیادی به وجود میان که برای خدمات رسانی به مشتریانشون تلاش می‌کنن. اگرچه همچنان نتایج تلاش‌های افراد نابرابره بیت کوین شرایطی رو برای انسانها فراهم میکنه که بتونن داراییشون رو به راحتی ذخیره کنن. چه چیزی تونه از این مفهوم عادلانه تر باشه؟ برای مشارکت در انقلاب مالی بعدی دنیا داشتن تنها یه تلفن هوشمند نه چندان گرون و دسترسی به اینترنت کفایت میکنه. برای سهم شدن در این آینده به هیچ بانک و مسئول دولتی و مجوزی نیاز نیست. هرکس با پس گرفتن اختیار ثروتش از چنگ نهادها و اشخاصی که بر سر کار هستن میتونه برای سرنوشت خودش آزادانه تصمیم بگیره بیت کوین آزادی بشر رو از راه امکان پذیر می کنه که در اوایل قرن 21 میلادی کسی فکرش رو هم نمی کرد. این کتاب رو به دیگران بدید و به گسترش این ایده کمک کنید سوال و جواب درباره بیت کوین در طول چند سال گذشته کسایی که به تازگی با بیت کوین آشنا شدند یا به اون مشکوکن سوالاتی در موردش پرسیدن تو این قسمت سعی میکنیم به مهمترین و پرتکرارترین اونها پاسخ و بعضی از شایعات نادرست چالشها، معایب و پیچیدگی های بیت کوین رو توضیح بدیم اطلاعات این بخش به هیچ وجه کامل نیست و هدف تنها فراهم کردن اطلاعات پایه برای ذهنهای کنجکاو تا بتونن به کمک اون به یادگیری درباره بیت کوین ادامه بدهند. ساتوشی ناکاموتو کیست؟ ساتوشی ناکاموتو خالق ناشناس بیت طی دو سال اول به وجود اومدن بیتکوین ساتوشی ناکاموتو یکی از اعضای فعال بیت بیتکوین بود ساتوشی مرتب از عقایدش درباره تکنولوژی بیتکوین و اثرات اجتماعی اون در اینترنت مینوشت و در عین حال در توصیه بیت بیتکوین هم مشارکت میکرد اواخر سال دو هزار ده میلادی ساتوشی به کلی ناپدید شد ساتوشی به احتمال زیاد صاحب صدها میلیون دلار بیتکوینه و هر کسی میتونه اونها را رو روی بلاکچین بیتکوین مشاهده کنه این بیت کوین ها هرگز جابجا نشدند پس ممکنه ناپدید شدن اون دائمی باشه در زمان نوشتن این کتاب هویت ساتوشی هنوز معلوم نشده و این مسئله به یکی از رازآلودترین معماهای قرن 21 تبدیل شده کنترل بیت کوین دست چه کسیه؟ کنترل بیت کوین دست هیچ قدرت مرکزی نیست. بیت کوین یا هیئت مدیره یا شرکتی که بر اون نظارت داشته باشه نداره. یکی از مهمترین خصوصیات های بیت کوین اینه که خالق اون هیچ فعالیت و نقشی در اون نداره. هزاران تایید کننده در سرتا سر دنیا وجود دارند که بلاکچین بیت کوین رو مورد بازبینی قرار میدن و تاریخچه همه تراکنش های بیت کوین رو توی خودشون ذخیره میکنن اسم این تایید ها فول نوده فول نود نرم بیتکوینه که هر کسی میتونه با اجرا کردن اون اعتبار دفتر کل حسابداری بیت کوین رو بازبینی و از درستی اون اطمینان حاصل کنه همونطور که توی فصل دو گفتیم ماینرها در سرتاسر سر دنیا برای ساختن بلاک های بیت با هم رقابت می کنند. این بلاکها توسط فول هایی که بالاتر معرفی شدن مورد بازبینی قرار می گیرند. نرم افزاری که این فول نود ها اجرا میکن رو برنامه نویسان بیت کوین نوشتند. تراکنش هایی که داخل بلاک هستند توسط کاربران بیتکوین ساخته شدند حالا چه از طریق صرافی یا کیف پول، روی تلفن همراه یا پردازش کننده پرداختشون منظور از پردازشگر پرداخت در اینجا نرم که برای فروشگاه ها و فروشنده ها امکان دریافت بیت کوین رو فراهم می کنند. همه این اجزا برای کارکرد بیت بیتکوین ضروری ولی هیچ کدوم از اونها کوین رو کنترل نمی کنن. اگه یه برنامه نویس تصمیم بگیره یک نرم افزار فول نود خیلی متفاوت بسازه ممکنه افراد کمی اون رو اجرا کنن اگه یه ماینر تصمیم بگیره پنهانی بلاکی که اعتبار لازم رو نداره بسازه فول نودها اون بلاک رو قبول نمیکنن اگه ماینرها تصمیم به کودتا بگیرن تا کاربرها مجبور به پذیرش قابلیت‌های جدید بر روی شبکه بشن شکست خواهند خورد چون هیچکس قادر نیست کاربرها رو مجبور به استفاده از نرم افزاری کنه که نمیخوان بنابراین هر تغییر در بیت کوین نیاز به توافق همگانی بین همه کاربران اون داره. از این نظر مدل حکمرانی در بیت کوین شبیه به توازن قوا در حکومت‌های برپایی دموکراسیه. ماینرها شبیه به قوه مجریه به کارهای اجرایی رسیدگی می‌کنند و مجری قانون هستند. برنامه‌نویسا شبیه به قوه مقننه قوانین جدید رو می‌نویسن و تصویب می‌کنند. کاربرا مثل قوه قضاییه کارشون اطمینان از اینه که دو قوه دیگه خارج از چارچوب قانون اساسی کاری انجام ندن نوسان بیت کوین خیلی زیاد نیست بیت کوین از همون سال 2009 که به وجود اومد نوسانات قیمتی خیلی بالایی رو تجربه کرده وقتی روند تغییرات قیمتی بیت کوین را در بلند مدت ببینیم قیمت بیت کوین از روزی که پدید اومده رشد قابل توجهی داشته از کسری از یک دلار آمریکا تا یازده هزار دلار در زمان نوشتن این کتاب همونطور که در فصل سه توضیح دادیم عوامل مختلفی باعث بالا رفتن قیمت بیت کوین شدند و این مسئله به احتمال زیاد ادامه پیدا خواهد کرد در زمان ضبط این کتاب صوتی، قیمت بیت کوین 55300 دلار دلاره. همون روزی که ساتوشی ناکاموتو بیتکوین کوین رو خلق کرد، سیاست پولی اون رو هم تعیین کرد. هیچ فرد یا گروهی نمیتونه تصمیم به خلق بیت بیشتر بگیره یا برنامه خلق بیتکوین رو تغییر بده چون فول ها این تغییرات رو قبول نمیکنن. در نتیجه بیت کوین نسبت به دستکاری‌های بازار آسیب پذیرتره چون هیچ سازوکار اصلاحی متمرکزی براش وجود نداره. بانک مرکزی می‌تونه برای حفظ پایداری قیمت‌ها پول جدید چاپ یا با تزریق ارز، پول تحت کنترلش رو از بازار جمع کنه. بیت کوین به عنوان یک ارز غیرمتمرکز فاقد هرگونه کننده بازار، همچنان که توسط مردم سرتاسر سر دنیا مورد پذیرش قرار میگیره نوسانات قیمتی رو هم تجربه میکنه. در علم اقتصاد، ارزها باید بین صبات قیمتی کوتاه مدت از راه کنترل متمرکز یا افزایش بالقوه ارزش در بلند مدت از طریق تمرکز زودایی یکی رو انتخاب کنند. ساتوشیاکامموتو غیر متمرکز بودن رو انتخاب کرد. با وجود همین نوسان قیمت، امروزه بیت کوین توسط مردمی که در تله سیستم‌های ناکارآمد اقتصادی گرفتارند به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این مسئله باعث شده ارزش جهانی حیرت‌آوری به دست بیاره کاربرد بیت کوین در دور زدن تحریم در امان ماندن از ابرتورم مدیریت سرمایه و مقابله با نظارت مستمر دولت‌ها یا شرکت‌های بزرگه در حال حاضر نوسان قیمت بیتکوین کوین به هایی که صاحبان اون حاضرن بپردازند پشتوانه ارزش بیت چیه پاسخ کوتاه به این سوال اینه پشتوانه بیت کوین مردم هستند سرمایهگذاران زیادی خریدارش هستند پس با ارزشه. برای توضیح دقیق دلیل رشد قیمت بیتکوین به فصل سه برگردیم برای خرید بیتکوین تقاضای جهانی وجود داره چون کمیابه و به عنوان یه فناوری هایی داره که هیچ ابزار مالی دیگه ای قادر به انجامش نیست چطور میشه به بیتکوین اعتماد کرد دنیای مدرن امروز مملو از سیستم و دستگاه های پیشیده که نمیشه کاملا به طرز کارشون پی برد ولی در این حال مورد اعتماد ما هستند. برای استفاده از خدمات درمانی لازم نیست پزشک باشین. برای مطلع شدن از وضعیت آب و هوا لازم نیست هوا شناس باشین. برای استفاده از لپتاپ لازم نیست مهندس الکترونیک باشین و برای سفر با هواپیما لازم نیست مهندس هوا و فضا باشین. از اونجا که در گذشته از اعتماد مردم به پول سو استفاده های مکرر شده که نمونه های اون رو در طول این کتاب برشمردیم پس باید معیارهای لازم برای اعتماد به یه سیستم پولی جدید سخت باشند تر باشن. اما در نهایت برای استفاده و اعتماد کردن به بیت کوین نیازی نیست در اون خبره باشیم. به روزی میرسه که دریافت و ارسال بیت کوین به راحتی کار کردن با ایمیل بشه اما فعلا افرادی که به بیت کوین علاقه دارن باید بیشتر در مورد اون تحقیق کنن در این خصوص منابع خوبی از جمله سورس نرم افزاره بیت کوین کتاب ها وبسایت ها و پادکست های خوبی در بخش منابع تکمیلی کتاب معرفی شدند پایداری شبکه بیت کوین چقدر مورد اطمینانه اگه از بیت کوین به درستی استفاده بشه از هر سیستم پرداخت متمرکزی سریعتر قابل اعتمادتر و خصوصی تره. سرویس های شرکت ویزا و مسترکارت هر از چندگاهی مختل میشن. بیت کوین از ژانویه سال 2009 میلادی یعنی از اولین روز شروع به کار اون تا امروز، 99.98 درصد دایر و قابل استفاده بوده. شرکت‌های صادرکننده کارت‌های اعتباری دائما اطلاعات خصوصی کاربرانشون رو به شرکت‌های تبلیغاتی می‌فروشن یا مورد حمله هکرها قرار میگیرند. بیت کوین اطلاعات کاربرانش رو به کسی بفروشه چون تحت کنترل هیچ شخص یا گروهی نیست. بیت کوین برخلاف سیستم‌های پرداخت و خیلی از بانک ها از سال 2010 که قیمت اون از یک دهم ده دلار گذشت هیچ وقت هک نشده بیتکوین هیچ شخصی در شبکه بیتکوین تا به حال به سرقت نرفته و این یک رکورد قابل توجهه. توجه کنین که سرقت از صرافی ها و کیف پول کاربرا ارتباطی به امنیت شبکه بیتکوین نداره چرا صرافی های بیت کوین میشن های ارز دیجیتال برای سهمای گذارایی که برای اولین بار بیت کوین یا از بیت برای معامله کردن توی بازارهای پول فیات یا ارزهای دیجیتال دیگه استفاده می‌کنن خیلی محبوبن. در نتیجه اونها از مقادیر زیادی بیت و پول فیات کاربرانشون نگهداری می‌کنن و این باعث میشه برای هکرها و دزدان هدفهای جذابی باشن. همچنین سررافی که خدمات امانی برای کاربرانشون فراهم می تصویر مدارک هویتی شخصی یا پاسپورت یا آدرس منزل کاربرانشون رو تحت سیاست KYC یعنی احراز هویت مشتریان ذخیره می کنن حملات به این سررافی ها می هم از بیرون هم از داخل اونها اتفاق بیفته حمله های داخلی ممکنه از سمت کارمندایی رخ بده که سطوح دسترسی بالایی به سیستم صرافی دارند و با سواستفاده از این دسترسی اقدام به دزدیدن سرمایه مشتریان می‌کنند. حمله‌های خارج از صرافی از سمت هکرهایی انجام میشه که از آسیب پذیری نرمافزارها یا امنیت عملیاتی ضعیف یا مهندسی اجتماعی برای دزدیدن بیت های صرافی استفاده می‌کنند. تا امروز صرافی زیادی از جانب کارمندان یا هکرهای ناشناس مورد حمله قرار گرفتند. فقط برای نمونه میشه به صرافی امتی گاکس در ژاپن، بیت فینکس در هنگ کنگ، بیت ستمپ در اروپا و به تازگی کوادریگا در کانادا اشاره کرد. هر کدوم از این حمله ها باعث از دست رفتن میلیونها دلار بیت کوین شده. این هوادث، یه هشدار خیلی جدی به کاربرایی که بیت کوینشون رو در اختیار صرافی قرار میدن تا براشون نگهداری کنه. مشتری هایی که از سرافی ها برای معامله رمز ارزها استفاده میکنن میتونن به صورت متناوب بیت هاشون رو از صرافی برداشت تا برای جلوگیری از از دست رفتن اونها به کیف پول شخصی خودشون واریز کنن. آیا خلافکارا برای مقاصد پولشویی از بیتکوین استفاده میکنند در یک کلام بله خلافکارها در گذشته از بیتکوین برای پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی استفاده کردند و در آینده هم استفاده خواهند کرد معروفترین مورد اون سایت سیلک روده یک بازار در دارکنت که برخلاف قوانین ایالات متحده با استفاده از بیتکوین بستری برای خرید و فروش مواد مخدر مهیا کرد. هرکس کس میتونه از بیتکوین استفاده کنه چون مثل تلفن همراه یا اینترنت برای استفاده کردن از اون نیاز به کسب مجوز از شخص یا نهادی نیست. اما کسی مشروعیت این ابزارها رو زیر سوال نمیبره یا به دلیل اینکه افراد خلافکار از اونها استفاده میکنن انتظار نداره استفاده کردن از اونها ممنوع بشه. مردم اغلب نسبت به فناوری‌های های بدبین و مشکوک هستند. در هر صورت اکثریت قاطع جرائم مالی در دنیای امروز توسط سیستم های مالی موجود و از طریق بانک ها و واسطه های مجاز انجام می‌گیرد. بیشتر این فریبکاری ها رو دولتها و شرکت های چند ملیتی مرتکب می تا اشخاص خلافکار دولت های مردم سالار برای فشار آوردن به بانکها و جلوگیری از انجام بعضی تراکنشها قوانین ضد پولشویی وضع کردند کردن. اما با وجود این، هر سال بیشتر از یک تریلیون دلار توسط سیستم بانکی موجود در جهان پولشویی میشه. برای نمونه، به تازگی افشا شده که تنها یکی از شعب بانک دانسکی در دانمارک تونسته رقم خیره کننده دویست و سی میلیارد دلار پولشویی کنه. این رقم از کل ارزش بازار بیتکوین در زمان نوشتن این کتاب بیشتره. پس اگر چه خلافکارها از بیتکوین استفاده میکنند، اما پول فیات رو ترجیح میدن. آیا بیتکوین طرح پانزی یا هرمیه؟ یک ترفند پانزی به سرمایه گذاران ورده سود بالا و ریسک خیلی پایین میده. پولی که از افراد پایین‌تر شبکه جمع میشه به عنوان سود به سرمایه‌گذارهای اولیه پرداخت میشه. هیچ کار تولیدی و سوداوری انجام نمیشه و سرمایه‌گذارهای اولیه فقط و فقط به دنبال جذب هرچه بیشتر زیر زیرشاخه برای خودشون هستن که بتونن از سرمایه‌گذاری اونها سود ببرن. وقتی هیچ سرمایه‌گذار جدیدی پیدا نشه این طرح فرو میریزه. بیت کوین یک طرح پانزی نیست. هیچ گروهی توی بیت کوین وجود نداره که برای سود رساندن به سرمایهگذار اولیه دنبال سرمایه جدید باشه. اما ممکنه افرادی که این طرح پانزی رو طراحی می کنن از سرمایهگذارها به جای پول بیت کوین قبول کنند همونطور که ممکنه هر نوع دیگه ای از پول رو هم بپذیرن. آیا بیت کوین یه حبابه؟ حباب برای یه دارایی وقتی شکل میگیره که معامله بازار به یک باره اون رو به قیمتی خیلی بالاتر از ارزش بنیادی اون بخرن. حباب وقتی میتره که که سرمایه‌گذاران دیگه به اون دارایی ایمان نداشته باشن و اون رو به قیمتی که توی بازار فروخته میشه نخرن. لاله‌های هلندی در دهه 1500 میلادی، کمپانی دریای جنوب در دهه 1700 میلادی و حباب سهام شرکت های اینترنتی در 2000 میلادی از نمونه های تاریخی ترکیدن حباب هستند. در فصل سه محرک های اصلی نوسان قیمت بیتکوین کوین رو شرح دادیم. به خاطر نوسان قیمت یک دارایی با سیاست مالی سفت و سخت شکهای ارزی منظم، ناپایداری و سقوط دیگر ارزهای دیجیتال اخلال در بازار، و امکان معامله اهرمی در بازار معامله بیتکوین بارها شاهد رشد های سعودی در قیمت بیتکوین بودیم که ریزش های قابل توجهی به دنبالشون داشتند. این روند به احتمال زیاد ادامه پیدا می کنه. با در نظر گرفتن بیت بیتکوین در بازه بلندمدت، مدت، محرک های قیمت و ذات غیرمتمرکز بیتکوین، طبیعتا هر بیشتر مورد استفاده عموم قرار بگیره قیمت اون هم بالاتر میره برخلاف لاله های هلندی یا سهام شرکت های اینترنتی قیمت بیت بارها و بارها به دلیل اینکه افراد بیشتری در سرتاسر سر دنیا خریدارش بودن، بعد از سقوط دوباره احیا شده و به سمت بالا حرکت کرده تتر چیه و چطور روی بیت کوین اثر میگذاره تتر یا USDT یک ارز دیجیتالیه که قرار قیمت اون متصل به دلار آمریکا و ثابت باشه. برای منظور شرکتی که خالق اونه قصد داره هر توکن از تتر رو با یک دلار آمریکا در حساب شرکت پشتیبانی کنه. وجود تتر کار رو برای معامله گران ارزهای دیجیتال راحت کرده چون میار ذهنی بیشتر مردم بر پایه دلار آمریکاست. پس وجود تتر، به عنوان یک واسطه برای دلار آمریکا باعث شده هر کسی قادر باشه به در اغلب های رمز ارز به رمز ارز با دلار آمریکا معامله کنه هرچند در آوریل سال 2019 اداره حقوقی تتر فاش کرد که فقط به اندازه 74 درصد همه ی تترهای درگردش گردش پشتوانه وجود داره اگر این رابطه یک به یک تتر با دلار از بین بره باعث سقوط قیمت تتر و در نتیجه به وجود اومدن یک نوسان قیمت کوتاه مدت در بیت کوین خواهد شد. ولی تتر رقبایی داره که علاقمند به پر کردن جایگاه اون هستند. آیا دولت‌ها میتونن استفاده از بیت کوین رو ممنوع یا شبکه اون رو خاموش کنند؟ چون هیچ شرکتی مسئول بیت کوین نیست. و سرورهای بیت کوین به صورت مرکزی مدیریت نمیشن و کسایی که نرمافزار افزار بیت کوین رو اجرا میکنند یک تیم به و مشخص نیستن پس عملا راهی برای خاموش کردن شبکه بیت کوین وجود نداره بیت کوین یک نرمافزار افزار اوپن سورسه که کد اون به صورت آزاد و رایگان روی اینترنت قابل دسترسه خرابکاری و تغییر دادن اون کار بسیار مشکلیه چون تحت نظارت همگانه. هر کسی میتونه نمه افزار بیتکوین رو دانلود و اجرا کنه و بلاکچین بیتکوین رو شخصا بازبینی کنه. این همون فول نوده که هرچه تعداد اون بیشتر باشه شبکه بیت بیتکوین مستحکم تر خواهد بود. حکومت ها میتونن استفاده از بیتکوین رو برای شهروندانشون دشوارتر کنن. اما این کار برای اونها تبدیل به بازی موش و گربه میشه. تجربه تبدیل پول فیات به کوین در کشوری مثل چین رو در نظر بگیرید. همونطور که در فصل یک گفتیم شهروندای چینی برای تبدیل پولشون به عرض خارجی محدود به سقف پنجاه هزار دلار امریکا هستن. ولی با این وجود برای انتقال پول به خارج از بیت کوین استفاده میکنن. حتی یه حکومت بزرگ و ثروتمند، که حکمرانی پلیسی در پیش گرفته نمیتونه شهروندانش رو از استفاده کردن از بیت کوین منع کنه چون شبکه بیت کوین پاشنه آشیل نداره و حکومتها قادر به خاموش کردن اون نیستن بیت کوین از این نظر شبیه به خود اینترنته یه حکومت میتونه دسترسی شهروندانش رو شبیه به کاری که چین با استفاده از فایروال بزرگ چینی میکنه به بخشی از اینترنت محدود کنه ولی شهروندان چینی میتونن با استفاده از وی پی و روش های خلاقانه دیگه راهی برای دور زدن این فیلترها پیدا کنند. هیچ دولتی نمیتونه بدون مسدود کردن اینترنت دسترسی به شبکه بیتکوین رو محدود کنه و به نظر میرسه به کره شمالی هیچ کشور دیگهی حاضر نیست به های اون رو بپردازه. پردازه. حکومت های اقتدارگرا میتونن تملک بیت کوین رو غیر قانونی اعلام کنند، ولی اجرای این حکم فوق‌العاده دشواره پنهان کردن بیت کوین تقریباً کار راحتیه چون ذات اون دیجیتاله ذخیره کردن بیتکوین روی تلفن همراه یا یه فلش مموری یا حتی به خاطر سپردن اون گزینه‌هایی که پی بردن به اونها برای حکومت بسیار دشواره در مقابل کشف و مصادره طلا ملک، سهام و پول فیات در حساب بانکی برای حکومت ها تقریبا آسونه. آیا استفاده از بیتکوین قانونیه؟ در اکثر موارد بله. تا آگست سال 2019 میلادی که این کتاب نوشته میشه مالکیت بیتکوین در همه جای دنیا به جز نامیبیا الجزایر بولیوی عراق مراکش نپال پاکستان امارات متحده عربی و ویتنام قانونیه از نظر قانونی بیتکوین پیشرفت زیادی داشته در طول ده سال گذشته بیتکوین از پولی که خلافکاران اینترنتی از اون استفاده میکنند به جایی رسیده که مورد تایید صندوق بین المللی پول بعضی از اعضای کنگره ایالات متحده ای آمریکا و والستریت قرار گرفته در کشور چین که حکومت بر سرافیهای ارض دیجیتال کنترل پلیسی اعمال میکنه و خلق توکنهای جدید ممنوعه بیتکوین یک دارایی دیجیتالی قانونیه حتی توی ایران استخراج بیتکوین یک صنعت معتبر و قانونیه دولتها در بیشتر کشورهای قاره آفریقا موضع عمومی در این مورد ندارند در کشورهایی مثل نیجریه و کنیا مقامات رسمی به مردم هشدار می‌دهند که نباید از اون استفاده کنند ولی هیچ گونه قانونی مبنی بر ممنوعیت اون هم وجود نداره. کشور آفریقای جنوبی در حال حاضر تنها کشوریه که بیت کوین در اونجا رسما پذیرفته میشه و قانونیه. در کانادا و ایالات متحده و اروپا هم تملک و استفاده کردن از اون قانونیه. چند کشور دیگه مثل ژاپن، مالتا، فیلیپین و تایلند چارچوب‌های مشخصی برای اعطای مجوز به های ارزهای دیجیتال تدوین کردند. پیامدهای مالی بیتکوین از هر موضوع دیگه ای پیچیده تره و بستگی به این داره که دولت‌ها بیت کوین رو در چه گروهی طبقه بندی می‌کنن. اگر بیتکوین توسط مراجع مالیاتی یک کشور جزو دسته دارایی قرار بگیره، صاحبان اون باید مثل یک واحد آپارتمان وقتی اون رو میخرن یا میفروشن یا وقتی قیمت اون بالا و پایین میره مالیات پرداخت کنن اگر روزی همه ی حکومت های کشورهای دنیا بخوان استفاده از بیت کوین رو ممنوع کنن به احتمال زیاد نمیتونن به یه توافق مشترک برسن حتی اگه بعضی از کشورها موفق بشن اونو رو ممنوع کنن کشورهای دیگه پا پیش خواهند گذاشت و از ماینرها و کارآفرینان و بیت بیتکوین استقبال خواهند کرد اشخاص با استعداد و ثروت افراد به کشورهای سرازیر میشه که قوانین سازگار تری با بیتکوین دارند و این امر باعث میشه بقیه ی کشورها در سیاستهاشون تجدید نظر کنن آیا استخراج بیتکوین هر در دادن انرژیه و دا به محیط زیست آسیب میرسونه؟ تا جوان سال 2019 زمانی که این کتاب نوشته میشه شبکه بیت بیتکوین سالانه حدود 73 تراوات ساعت برق مصرف میکنه. کمی بیشتر از مصرف سالانه برق کشور اتریش یعنی 69 تراوات ساعت و خیلی خیلی کمتر از مصرف سالانه پرمصرفترین کشورهای دنیا یعنی چین به اندازه 6100 ترواد ساعت و مصرف سالانه ایالات متحده اندازه 3900 تراوات ساعت منتقدان به میزان مصرف بیتکوین کوین اشاره میکنند و معتقدان خیلی بالاست در واقع این نقد وارده اما به این معنی نیست که بیتکوین انرژی هدر میده یا برای محیط زیست خطرناکه منبع انرژی برقی که استخراج کنندهای بیت کوین معمولا از اون استفاده میکنند و ارزشی که بیتکوین به وجود میاره میتونه برای درک بهتر موضوع به ما کمک کنه جلوگیری از هدر رفتن انرژی از راه استخراج بیتکوین استخراج بیتکوین کوین میتونه موجب مصرف بهینه اضافه ظرفیت نیروگاه ها بشه صنعت استخراج هم سیاره هم حاشیه سود پایینی داره بنابراین شرکت های فعال در این حوزه امکان و انگیزه لازم برای جستجوی برق ارزان رو دارن معمولا برق ارزان در مکانهای دور از دسترس پیدا میشه که در اونجا از همه ظرفیت تولید استفاده نمیشه. بیشترین استخراج کننده های بیت کوین توی چین مستقرن که در اونجا های برق مجموعا 200 تراوات ساعت برق اضافی تولید می‌کنن. بزرگترین مزرعه باتری جهان فقط قادر به ذخیره 5 دهم درصد از اونه. پس این مقدار انرژی رو نمیشه جایی ذخیره و به سادگی به نقاط دور منتقل کرد و عملا بلا استفاده میمونه. به جای هدر دادن این انرژی، نیروگاه ها میتونن اون رو با استفاده از دستگاه های استخراج به بیت تبدیل کنند. این موضوع هر جایی از دنیا که مقدار انرژی تولید شده از مقدار مصرف بیشتره، صدق میکنه. بستگی صنعت استخراج بیت به انرژی های تجدیدپذیر امروزه انرژی مصرفی در صنعت استخراج بیت کوین از انرژی‌های تجدیدپذیر که کمترین ضرر رو به محیط زیست می‌رسونن تأمین میشه. بر اساس آخرین برآوردها، حدود 75 درصد از انرژی استخراج بیتکوین از آب، خورشید، باد یا انرژی گرمایش زمین تأمین میشه. حدود 50 درصد از استخراج بیتکوین با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر فقط در یک بخش چین و با استفاده از برق تولید شده با انرژی صدها انجام میشه. های آبی ظرفیت تولید برق بالایی دارند ولی این ظرفیت غالباً بلا استفاده میمونه. استخراج بیت از این اضافه ظرفیت استفاده میکنه چون مراکز استخراج میتونن در کنار نیروگاه های برق احداث بشن و از حزینه های اضافی انتقال برق جلوگیری کنن. درآمد حاصل شده از استخراج بیتکوین میتونه به گسترش تحقیقات و سودآورتر شدن تولید برق با استفاده از انرژی آب منجرشه و دیگران رو به استفاده از اون ترغیب کنه صنعت استخراج بیتکوین همینطور میتونه مشوقی باشه برای استفاده استفادهٔ هرچه بیشتر از انرژی تولید شده از خورشید باد و گرمایش زمین سنعت استخراج صنعت موجب خلق یک پول مطمئن و قابل دسترس برای همگان میشه. ماینر امنیت شبکه بیت بیتکوین رو تمین میکنند. همونطور که توی فصل دو توضیح دادیم، تقلب برای ماینر خیلی گرون تموم میشه چون اونها برای یافتن اعداد نادری که منجر به ساخته شدن بلاک های معتبر میشه برق زیادی مصرف میکنن. هرچه تعداد ماینر در شبکه بیت بیتکوین بیشتر شه، امکان حمله به اون هم مشکلتر میشه. انرژی صرف شده برای تامین امنیت شبکه بیت کوین رو با هزینه لازم برای ساخت و نگهداری از یک گاف صندوق که از دویست میلیارد دلار دارایی با ارزش نگهداری میکنه مقایسه کنین. بیت کوین ممکنه برای فردی که توی کشورهای پیشرفته زندگی میکنه یک گزینه از گزینه های متعدد مالی باشه. ولی برای کسایی که در دیگر نقاط دنیا زندگی میکنن خدمات مالی مثل اپل پی یا ونمو فراهم نیست. اگه مصرف برق صنعت استخراج بیت کوین رو هدر دادن انرژی بدونیم، در واقع انگار کاربردی که برای افراد محروم از تکنولوژی فراهم میکنه رو نادیده گرفتیم. بخشی از این انرژی صرف پردازش تراکنش های افرادی میشه که حساب بانکی یا مدارک هویتی ندارن. یا نمیخواند فعالیت های مالیشون تحت نظارت شدید دولت ها باشه. ممکن کارایی کارت اعتباری در کشوری مثل ایالات متحده از بیت کوین بیشتر باشه، اما برای یک کارگر مهاجر ساکن شهر دوبی یا یه ایرانی که زیر سایه تحریم های سازمان ملل زندگی میکنه قابل استفاده نیست. مصرف انرژی و نوآوری در تکنولوژی بیت کوین نوآوری بزرگیه و سیستم مالی رایج دنیا نمیتونه امکاناتی که در این کتاب درباره اون صحبت کردیم رو برای مردم فراهم کنه. از نظر تاریخی تکنولوژی های جدید جایگزین سیستم‌های قدیمی میشن و از اونها پرمصرفترن. برای نمونه اثر استفاده از خودرو بر اسب، اثر بیمارستان امروزی در مقابل چادرهایی که در فضای باز برپا می‌شدن. اثر ماشین لباسشویی بر شستشوی دستی اثر فریزر بر جعبه یخی اثر لامپ الکتریکی بر لامپ روغنی رو در نظر بگیرید هزینه الکتریسیته های جدید در برابر اثر مثبتی که بر کیفیت زندگی می‌گذارند، ناچیزه هرچه تمدن بیشتر پیشرفت میکنه سرانه مصرف انرژی هم بالاتر میره نوآوری باعث پیشرفت جامعه میشه و باید به های اون رو پرداخت کرد، به های در اختیار داشتن یک سیستم مالی در دسترس و امن مصرف بالای انرژیه بیت کوین انرژی زیادی مصرف میکنه ولی در عین حال موجب پیشرفت در فناوری انرژی های تجدید پذیر میشه. بیت کوین ارزش بالایی برای همه مخصوصاً برای فقیران و محرومان فراهم میکنه و جایگزین یک سیستم قدیمی میشه که در حال حاضر حتی بیشتر از اون انرژی مصرف می کنه. ممکنه کسی بتونه شبکه بیتکوین رو با استفاده از یک ابر کامپیوتر یا یک کامپیوتر کوانتومی حک کنه؟ روی کاغذ بله. یک نفر با توان پردازشی کافی می به شبکه بیتکوین حمله کنه ولی در عمل این کار بسیار دشواره. این فرد با احتساب توان پردازشی سخت های امروزی باید بیشتر از یک میلیارد دلار برای تهیه ادوات استخراج هزینه کنه که برای کار کردن به انرژی تولیدی هشت نیروگاه برقابی نیاز دارند. در حالی که اگر اون این تشکیلات رو صرفاً برای استخراج بیت و نه حمله به شبکه به کار بگیره سود خوبی نصیبش خواهد شد پس چنین کاری از نظر اقتصادی غیر منطقیه در زمان نوشته شدن این کتاب یک کامپیوترهای کوانتومی نسبت به کامپیوترهای مرسوم چندین برابر کندترن. دو ساختن کامپیوترهای کوانتومی به شدت گرونه و به خاطر همین مسئله تا مدتها ساخت اونها صرفه اقتصادی نداره سه الگوریتم های کوانتومی شناخته شده امروزی یک جهش بزرگ در صنعت کامپیوترهای کوانتومی هستند ولی همچنان برای شکستن رمزنگاری استفاده شده در بیت کوین باید میلیاردها از این کامپیوترها برای میلیاردها سال کار کنند. حتی اگر دانشمندا الگوریتم های کوانتومی جدیدی ابداع کنند که قدرت شکستن رمزنگاری مدرن رو داشته باشند، میشه از روشهای رمزنگاری جدیدی در بیت کوین استفاده کرد که در مقابل الگوریتم های کوانتومی مسون هستند. به عبارت دیگه جامعه کاربران و توسعه دهندههای بیت کوین قادرن همیشه یک قدم از حمله کامپیوترهای کوانتومی جلوتر باشند هرچند جامعه بیت باید نسبت به احتمال رخ دادن حمله های بزرگ در شبکه بیتکوین کوین هوشیار باشه ولی برای کاربرای معمولی جای نگرانی نیست بیت چطور میتونه غیر متمرکز بمونه یکی از مهمترین ویژگی های بیتکوین اینه که هر کسی میتونه یه نسخه از دفتر کل بیتکوین رو که سابقه تک تک تراکنش های شبکه رو درون خودش داره دانلود کنه و خودش سوابق تراکنش ها رو بازبینی و از درستی اون اطمینان پیدا کنه. همونطوره که توی فصل دو گفتیم این کاریه که یه فول نوت انجام میده. هرچی راه انداختن و نگهداری از این فول نوت ها برای کار برای باشه مقاومت شبکه بیت کوین در برابر سانسور بالاتر میره. اگه شبکه بیت کوین مجبور باشه به فول نودهای چند شرکت بزرگ یا تعداد کمی از افراد ثروتمند تکیه و اعتماد کنه، اونها ممکنه با هم تبانی کنن و سابقه ها رو تغییر بدن یا بیت دیگران رو به سرقت ببرن. هر کاربر با راه انداختن یه فول نود میتونه همه چیز در شبکه بیت کوین رو شخصا بازبینی کنه. و نیازی به اعتماد کردن به دیگران نداره اگه پیش نیاز راه انداختن فول نود سرور گران قیمت یا اینترنت پرسرعت باشه افراد فقیر چاره ای جز اعتماد کردن به دیگران ندارن و طبیعتا شبکه هول کشورهای ثروتمند و کسب و کارهای پیشرو در فناوری تمرکز پیدا میکنه خوشبختانه چون راه انداختن فول نود به ملزومات خاصی نیاز نداره هزاران هزار کاربر در سرتاسر سر دنیا که هیچ آشنایی با همدیگه ندارند، ندارن همواره قادرن بلاکچین بیتکوین رو بازبینی و تعیید کنند. علاوه بر این، هرچه فول سختافزاری سخت افزاری و آماده به کار بیشتر و بیشتری به بازار عرضه بشن، راهندازی فول برای افرادی که دانش فنی ندارن امکان پذیرتر میشه. در حال حاضر، چندین متخصص علوم کامپیوتر و ریاضیدان، در مؤسساتی چون MIT و استنفورد در حال طراحی روش هستند که به هرکس اجازه میده روی گوشی تلفن همراهش یه فول نود اجرا کنه و این مسئله در نهایت به غیر متمرکز شدن هرچه بیشتر شبکه بیت کوین کمک میکنه آیا بیت کوین از حریم خصوصی حفاظت میکنه؟ یه تصور غلط و رایج اینه که تراکنش های شبکه بیت کوین ناشناس هستند اما حقیقت ماجرا اینه که میشه با نام مستعار و نه ناشناس از بیتکوین استفاده کرد و با کمی تجزیه و تحلیل روی ترکنش های افراد میشه به هویت اونها پی برد یک کاربر بیتکوین میتونه با هوشیاری و رعایت کردن نکات امنیتی ترکنش هاش رو به صورتی مخفی کنه که ردگیری اونها مشکل باشه هرچند دولت‌ها یا شرکت هایی که در این زمینه تخصص دارند میتونن با تخصیص زمان و منابع مورد نیاز کافی همچنان افراد و ترکنش های اونها رو توی شبکه بیتکوین ردگیری کنند. در حال حاضر سرویس‌های جدیدی در قالب کیف پول خدمات تأمین حریم خصوصی و ترکنش های ناشناس برای بیتکوین ارائه میدن. خانندگان این کتاب باید هوشیار باشند و قبل از استفاده از این سرویس‌ها تحقیق جامع و کاملی درباره این موضوع انجام بدهند. کیف پول سامورایی و واسابی در حال حاضر از معروفترین فراهم کننده های سرویس کوین جوین هستند. گذشته از این مسائل بیت کوین نسبت به سیستم های پرداخت موجود حریم خصوصی بیشتری برای کار براش فراهم میکنه صورت های آنلاین رو میشه بدون فاش کردن اطلاعات خصوصی مثل نام خریدار یا حساب بانکی و آدرس اون پرداخت کرد این از سیستم بانکی رایج خیلی بهتره که در اون هر روز دولتها شرکت بزرگ و فروشندگان به اطلاعات افراد دسترسی پیدا می کنن و اون رو با دیگران به اشتراک میگذارند می, گذارن، می فروشن یا اطلاعات خصوصی اونها رو فاش می کنن. تکامل مداوم و برنامه ریزی شدهی بیت کوین مثل شبکه لایتنینگ، تبروت و امضای الکترونیکی شنور امکان تراکنش های خصوصی بیتکوین کوین رو ارزونتر و آسونتر می‌کنند. بیتکوین کوین پتانسیل تبدیل شدن به یک تکنولوژی فوق برای تأمین حریم خصوصی رو داره که موجب میشه کنترل و زیر نظر قرار دادن مسائل مالی عموم مردم برای دولتها و شرکت بزرگ. به شدت دشوار بشه در اوایل کار اینترنت هم اطلاعات شبکه به صورت عمومی و رمزنگاری نشده منتقل می شد. وقتی کاربرا و کسب و کارها به تراکنش های خصوصی احتیاج پیدا کردن مهندسان لایه هایی روی اینترنت اضافه کردند. ارتباطات امن و خصوصی در حال حاضر به وسیله اپلیکیشن های پیامرسان که به صورت خودکار پیام‌های رمزنگاری شده ارسال می‌کنند امکان بیت کوین هم روش مشابهی پیش گرفته بیتکوین کوین چطور می‌تونه نیازهای 7 میلیارد نفر رو برطرف کنه در سال 1989 میلادی که شبکه جهانی وب ابداع تا بر بستر شبکه اینترنت به کار گرفته شد کسی حتی تصورش رو هم نمیکرد از نظر فنی امکان تبادل عکس بین کاربرای این شبکه وجود داشته باشه چه برسد به ویدیو؟ با گسترش و پیشرفت تکنولوژی اینترنت امروز به جایی رسیده که میشه اپلیکیشن هایی مثل اشتراک گذاری ویدیو و ویدیو کنفرانس رو که حجم داده بالایی مصرف میکن بر روی اون اجرا کرد در هر دقیقه 300 ساعت ویدیو فقط روی سایت یوتیوب آپلود و روزی 5 میلیارد ویدیو توسط کاربران دیده میشه. برای توسعه بیتکوین کوین هم راه های زیادی وجود داره. همونطور که توی فصل چهار توضیح دادیم، در حال حاضر ظرفیت بیتکوین از طریق شبکه لایتنینگ تقویت میشه. شبکه لایتنینگ علاوه بر بالا بردن حریم خصوصی تراکنش، باعث افزایش ظرفیت شبکه بیتکوین کوین میشه. شبکه لایتنینگ میتونه میلیون ها تراکنش بیتکوین رو در هر ثانیه پردازش کنه. بیتکوین در مسیری قرار داره که ظرفیت اون به صورت تصاعدی رشد میکنه در حالی که سیستم سنتی پرداخت ویزا خطی و صرفاً با استفاده کردن سخت جدید ارتقا پیدا میکنه. بیتکوین میتونه انقلابی در نظام پرداخت پدید بیاره و با استفاده از امکان پرداختهای خورد، به کوچکی یک هزارم ساتوشی موجب به وجود اومدن محصولات جدیدی بشه با استفاده از ترکیب تراکنش هایی که بر روی شبکه بیتکوین انجام میشن و محتاطانه، کند، فوق امن و مقاوم در برابر سانسور هستند و تراکنش هایی که بر بستر شبکه لایتنینگ و به صورت ای آنی و ارزان هستن بیتکوین میتونه تبدیل به یه سیستم پرداخت جهانی بشه این چشمندازیه که باید به دنبال اون بریم چون باعث میشه قدرت مالی هرچه بیشتر از دست دولتها و شرکتهای بزرگ خارج بشه و دوباره به دست مردم برگرده در حال حاضر تصور اینکه که بیتکوین بتونه نیازهای میلیاردها نفر رو براورده کنه کمی دشواره. همونطور که ارسال ویدیو به میلیاردها نفر روی اینترنت ناممکن به نظر میرسید آیا نابرابری ثروت در بیت کوین وجود داره؟ افرادی که در مراحل اولیه بیت کوین حاضر بودند، فرصت داشتند تعداد زیادی بیت کوین جمع کنند. هرچند اطلاعات بلاکچین نشون میده تعداد زیادی از این افراد بیت کوینشون رو در طول سالهای 2009 تا 2012 فروختند. خیلی از خریدارانی که در سال 2011 بیت کوین یک دلاری خریدن، چند ماه بعد اون رو چهار دلار فروختند یا چند ماه بیشتر صبر کردند و سی دلار فروختند. خیلی از این افراد جرأت نداشتن در خلال نوسانهای قیمتی شدید روزهای اول بیت کوین در بازار باقی بمونند. یا کلیدهای خصوصی و در نتیجه بیت کوین هاشون رو برای همیشه از دست دادن اونایی که باقی موندن از همون روز اول از اون پشتیبانی کردند. و پتانسیل بیت کوین برای تغییر دنیا اعتقاد واقعی داشتند امروزه چند هزار آدرس بیتکوین کوین هستند که اکثر بیت موجود در اونها ذخیره شده است بعضی از این آدرس ها متعلق به افرادی که که بی‌نهایت ثروتمندند بیشتر اونها شرکت هایی مثل بایننس و کوین بیس هستند که از اون آدرس ها برای ذخیره ثروت ده‌ها هزار مشتری خودشون استفاده میکنند از اونجا که هیچ ارتباط مستقیمی بین آدرس ها و کاربر وجود نداره توضیع دقیق ثروت به راحتی قابل تشخیص نیست بیتکوین مشکل نابرابری اقتصادی رو حل نمیکنه هرکس این رو بگه خلاف واقعیت گفته اما به عنوان ابزاری در دسترس همگان فرصتی عادلانه برای پسانداز درآمد مردم جهان فراهم میکنه که برخلاف های مالی رایج در جهان از دست برد دولت دولت‌ها مسونه اگه فقط 21 میلیون بیتکوین وجود داشته باشه چطور همه مردم جهان میتونن از اون استفاده کنن واحد اسکناس های رایج دنیا معمولا به 100 زیر واحد شکسته میشه و اسم اونها عموما پنی یا سنته دلار آمریکا و یورو هر کدوم میتونن به 100 سنت شکسته بشن واحد پول چین میتونه به 10 جائو یا 100 فن و پول چکوسلواکی به 100 هالر از سوی دیگه بیت کوین رو میشه به 100 میلیون واحد کوچکتر تقسیم کرد کوچکترين واحد بیتکوین ساتوشی نام داره که از اسم خالق اون گرفته شده بنابراین عرضه کل بیت کوین تریلیون ساتوشی خواهد بود این رقم تقسیم پذیرتر از دلار آمریکا با جمع نقدی 1500 تریلیون سنت در زمان نگارش این کتابه. بخش پذیری بیتکوین برابر یا حتی بیشتر از دلار آمریکا فرض کنید بخوایم همه ساتوشی های موجود رو به تصاوی بین 7 میلیارد جمعیت دنیا تقسیم کنیم. در نتیجه 300 هزار ساتوشی معادل 3000 هزارم بیت به هر نفر میرسه. بنابراین اگر روزی بیت کوین تبدیل به پول رایج جهان بشه به نظر میرسه برای انجام فعالیت های مالی مردم دنیا به اندازه کافی بخش پذیر باشه من استطاعت خرید بیت کوین رو ندارم قیمت اون خیلی بالاست بیت کوین به واحد های کوچکتری تقسیم میشه بنابراین میشه یه بخش کوچکی از اون رو خریداری کرد در زمان نگارش این کتاب میشه با 500 هزار تومن 18 ده معادل 180 هزار ساتوشی خریداری کرد. چطور میتونم بیتکوین به دست بیارم؟ راه های اصلی کسب بیتکوین شامل موارد زیره. یک استخراج کردن دو خریدن و سه در ازای دست مست. استخراج در حال حاضر هاشیه سود استخراج بیتکوین بسیار پایینه. شبیه به صنعت استخراج طلا، نیاز به ابزار، ارتباطات صنعتی و دانش تخصصی در زمینه سوداوری، سالها تجربه و میلیونها دلار سرمایه داره. برای همین صنعت استخراج بیتکوین تبدیل به تجارتی برای شرکت‌های بزرگ با منابع و دانش زیاد شده. و اشخاص بی تجربه نخواهند تونست از اون سودی کسب کنند برای افراد تازه وارد گزینه های خرید و دریافت در اعضای دستمزد به صرف تر از گزینه استخراج هستند. خریدن راه های زیادی برای خرید بیت کوین وجود داره بعضی از اونها از بقیه خصوصی تر هستند خرید از خود پردوازهای بیت کوین و مبادله بیواسطه هم سرعت بالایی داره و هم تقریبا خصوصیه سرمایه‌گذاران میتونن در های آنلاین ثبت نام کنن و باید مدارک هویتی خودشون رو برای اونها ارسال کنند. فرایند احراز هویت از چند دقیقه تا چند روز طول میکشه. این شرکتها شبیه به بانک عمل می‌کنن و از بیتکوین و پول فیات مشتریانشون نگهداری می‌کنن استفاده از اونها به قیمت از دست دادن حریم خصوصی تموم میشه ولی مشتریان اونا میتونن بعد از خرید بیتکوین اون رو به کیف پولهای شخصی خودشون منتقل کنن و از مالکیتش اطمینان حاصل کنن. در ازای دست موز هر کسی میتونه با استفاده از یک کیف پول بیتکوین یا لایتنینگ به صورت مستقیم در ازای فروش کالا یا خدمات بیتکوین دریافت کنه. کارمندان میتونن بخشی از حقوقشون رو به جای پول فیات به صورت بیتکوین دریافت کنن. چطور از یک کیف پول بیتکوین استفاده کنم؟ انواع مختلفی از کیف پول های بیتکوین وجود داره. کیف پول های نرم افزاری قابل نصب روی کامپیوتر و موبایل کیف پول های سخت افزاری و کیف پول های قابل دسترس به صورت وبسایت‌های آنلاین. هر کدوم از اونها از نظر امنیت، راحتی در استفاده و رعایت حریم خصوصی ظرف قوتهایی دارند که کاربرها باید اونها را بررسی کنند. یک راه نسبتاً امن برای بیت بیتکوین استفاده از کیف پولیه که اختیار تام بیتکوین ها رو به دست صاحبش میز باره. اونها در قسمت کیف پولهای سخت افزاری در بخش منابع تکمیلی این کتاب فهرست شدند. در همین حال راحتترین راه برای شروع اینه که کیف پول رایگان روی تلفن همراه نصب شه. بعضی از این نوع کیف پول ها هم در بخش منابع تکمیلی فهرست شدند. اولین کار بعد از نصب و راه‌اندازی یک کیف پول بیت ساختن یک نسخه پشتیبانه که به کلمات بازیابی معروفه. کلمات بازیابی به کلماتی گفته میشه که اطلاعات مورد نیاز برای بازیابی کیف پول بیت توی اونها ذخیره شده. تعداد این کلمه ها معمولا دوازده یا بیست و چهار کلمه است. اگه به هر دلیلی کیف پول از بین بره، میشه از این کلمات برای بازیابی مجدد اون استفاده کرد. معمولا اونها را رو روی یه تیکه کاغذ می نویسن. کیف پول با استفاده از این کلمات به طور کامل بازیابی میشه. پس باید در یک جای امن از اونها نگهداری کرد. با این کلمات باید مثل شمش تلای یا علماس رفتار کرد و در حفظ اونها کوشید چون ارزش قابل توجهی دارند با پیشرفت فناوری، کیف پولهای جدید بر سهولت استفاده، کاربرد، امنیت و رعایت حریم خصوصی تمرکز می کنند. یک کیف پول بیتکوین بعد از راه اندازی اولیه می تونه یه آدرس منحصر بفرد به ازای هر تراکنش بسازه. این روش با روش معمول پرداخت های بانکی که هر مشتری فقط یه شماره حساب داره متفاوته. بیتکوین با استفاده از این آدرس های منحصر به فرد مربوط به کیف پول کاربرها بهتر میتونه از حریم خصوصی اونها محافظت کنه. همونطور که در قسمت چرا سررافی های بیتکوین حکمیشن شرط دادین اگه سرمایه گذارها بیتکوین هاشون رو در سررافی آنلاین نگهداری کنند، در معرض خطر هک شدن قرار می گیرند برداشت و انتقال بیت ها به کیف پول شخصی بعد از خرید این ریسک رو از بین میبره